فصل شانزده هم های بمباران اتمی در روز پایانی جنگ یعنی پانزدهم ماه اوت به پایان می رسید. اگر فقط سه روز دیگر رو نویسی می تمام می‌شد. اما شیگماتسو همه معطوف حواسش به بیماری یاسوکو شد و نمی توانست به نوشتن بپردازد. علاوه بر این در کار آماده کردن استخر پرورش ماهی کپور هم که همراه آقای یادسویاشی انجام میدادند کارهای استراری پیش آمده بود. بنابراین در حال حاضر تقریباً به شکل برنامهای روزانه به خانه آقای یادسویاشی سر میزد. بیماری یاسوکو ناگهان وخیم شد. دلیلش این بود که آقا و خانم شیگماتسو نسبت به رفتار یاسوکو توجه لازم را نداشتند و یاسوکو هم مقابل این زوج بیش از حد رودر بایستی داشت نشانه بیماری درست قبل از جواب رد خاستگارش پیدا شده بود از آنجا که این نشانه درست مانند بروز بیماری دستگاه تناسلی در حین شادی موافقت با خاستگاری بروز یافته بود یا حتی از در میان گذاشتن این مسئله با شیگهکو هم که مانند خودش زن بود اجتناب کرد حتی مخفیانه برای معالج پیش پزشک نرفت. چیزی بود که بعدن همه فهمیدند. شیگه یاسوکو را همراه خود به بیمارستان مشترک روستای کباتاکه برد. وقتی او اولین بار مورد معالج قرار گرفت، وضعیت بیماری چندان ساده نبود. هرچقدر هم گفته شود کم است. یاسوکو در مقابل آقا و خانم شیگماتسو زیادی رو دربایستی کرده بود. شاید به گفت به خاطر مسئله خاستگاری بود اما تا حدودی خجالت هم دخیل بود. وقتی شیگه کو از بیمارستان برگشت به شیگه ماتسو که در حال ترک خانه بود گفت واقعا حیف شد. یاسوکو همه چیز را پوشیده نگه داشته بود. یاسوکو با افسردگی گفت امو ببخشید. این مربوط به ساعت سه بعد از ظهر بود. شیگه ماتسو با غذایی که تدارک دیده بود و چرا قوه آزم استخر پرورش ماهی شد. همراه آقای آتسویاشی و آقای آساجی رو به تنظیم دمای آب استخر تخم ریزی پرداختند. هنوز ماه جولای بود و آب استخری که کپورهای بالغ در آن تخم ریزی می کردند، دمای مناسبی داشت. استخر از حدود 88 شب قبل دمای مناسب 18، 19 یا 20 درجه را داشت. با این همه در آغاز این دمای آب درد سرساز است همچنین گذاشتن نر و ماده با هم دیگر هم خوب نیست قبل از آن با تعبیه الوارهایی الوارهای نرها و ماده ها را از هم جدا کردند دمای آبرار روی نه تا ده درجه نگه داشتند تا برای مدتی روشت کنند بعد آب تازه با درجه مناسب وارد و نرها و ماده ها را با هم رها کردند در این وقت سرانجام نرها و ماده ها با هم روبرو و با سرحالی در آب تازه ناگهان برانگیخته شدند. ماهیها از ساعت یازده شب تا صبح فردا مقدمات تخمگذاری را انجام دادند. لانه ماهی ها، پرزهای شورو، هیکاگ نوکازورا جلبک قرمز و غیره بود. این روش تخمگیری است که آقای اتزویاشی و آقای آساجیرو در محل پرورش ماهی در روستای تسنوکان مارو یاد گرفته بودند. اولین بار بود که آن را عملی می کردند و هر دو بسیار اشتیاق داشتند که این کار درست انجام شود. آقای آساجیرو گفت برای جلوگیری از حمله راسو تا سپید دم از کپورها حفاظت خواهد کرد. آقای آتسویوشی هم گفت تا سپید دم نگهبانی خواهد داد. شیگ ماتسو هم قرار شد صبح زود بیاید پس ساعت یازده شب به خانه برگشت. مهی قلیز بود. و به نظر میرسید نوک درختان کن‌پاناشی باغچه در آسمان شب حل شدهاند در ورودی و ایوان ساختمان اصلی بسته بود. دو سه بار که سرفه کرد، یک لته از در ایوان آهسته باز شد. وقتی نور چراغ قوه را انداخت، شیگکو در لباس خواب با صدای آهسته گفت: کمی صبر کنید. همزمان شیگه ماتسو چراق را خاموش کرد. شیگه کو در را پشت سرش بست و درگوش گوش شیگه ماتسو که بر برامدگی ایوان نشسته بود زمزمه کرد. شاید یا هنوز نخوابیده باشد. باید با هم مخفیانه صحبت کنیم. بسیار خب، مخفیانه صحبت می کنیم. شیگه ماتسو هم با صدایی خیلی آهسته گفت. یا چی شده است؟ سودتر بگو. شیگه کو را که به خاطر گیر کردن به قطع سنگی در آمده بود پوشید و شیگه ماتسو را زیر درخت کن برد. شیگه ماتسو دست شیگه را رها کرد اما شیگه باز دست او را چسبید. این چون دو نفری آهسته و دست در دست خارج شدند. کاری بود که هنگام زنده بودن مادرش که پارسال مرد و حتی قبل از آن هم تجربه نکرده بودند. با وجود مه قلیز، باغ زیادی روشن بود. شیگکو به عادت وقتی که سختی می کشید در حالی که موهای پریشانش را می کشید زمزمه کرد. آنچه را دکتر کاجیتا در بیمارستان به من گفت مجبورم در گوشی به شما بگویم. دیگران به خیلی بد می شود. بسیار خوب. آهسته بگو. مدتی قبل یعنی بعد از ساعت نه شب بعد از اینکه یاسوکو خوابش برده بود شیگکو به خانه دکتر رفته، و وضعیت معالجات یاسوکو را جویا شده بود. حرف دکتر این بود که یاسوکو به شکلی که آقا و خانم شیگماتسو متوجه نشوند کتاب درمان خانگی را خوانده و خودش شروع به درمان کرده است. اگر مردم از این مسئله با خبر شوند این سوء تفاهم پیش خواهد آمد که دخترخوانده بیمار اتمی شیگماتسو با اینکه وضعیت وخیمی دارد به حال خود رها شده است. به هر حال این دیدگاه که بیماری اتمی یک بیماری لاعلاجه است این سوء تفاهم را پیش می آورد این اواخر در روستای همسایه هم نمونهی شبیه به این وجود داشت خجالت و حجبه هیای زن جوان لجوجی که زمان و موقعیت باعثش شده بود با هم را میختند و تراجدی را شکل دادند یاسوکو اول تب کرد شیگکو زمزمه کرد کتاب درمان خانگی را خاند و آسپرین خورد که پایین آمد باز با خواندن کتاب سانتونین مصرف کرد داروی ضد کرمه است بله و چون این کار را کرد اسهال گرفت دو سه روز تبش پایین آمد اما اطراف کفلش آماز کرد و خیلی درد گرفت خجالت میکشید، پس پیش دکتر نرفت فکر کرد بیماری بدی است با پماد آنتی بیوتیک آن را چرب کرد به همین دلیل بود که یاسوکا تنها به حمام میرفت. شاید فکر میکرد بیماریش به دیگران سرایت خواهد کرد پس به این دلیل اجتناب می کرد اما وقتی آمز فروکش کرد و کمی راحت شد تبش بالا رفت و موهایش شروع به ریزش کرد فکر کرد این بیماری اتمی پایان راه است بنابراین سه تا چهار برگ گیاه صبر زرد را در یک روز میخورد بعد از آن نتوانست تحمل کند و پیش شما اعتراف کرد این حرفهایی که از دکتر کاچتا شنیدم آن وقت بود که فهمیدم چرا صبر زرد های خانه که داروی کم خونی است زود ریشهشان از خاک بیرون میآید مثل یک بچه فکر کرده بود با این کار گلول خونش را افزایش میدهد. کار را از بچگی هم گذرانده بود. تصف برانگیز است. تصف برانگیز است. درست است که به دلیل ورم کفلهایش آشفته شده و نمی دانست چه کار کند. ولی چرا زودتر چیزی به ما نگفت. شیگه کو همراه این کلمات بغز گلویش را فرو خورد. شیگه ماتسو آهی کشید. در حال حاضر جز تقویت ت و او را با تکیه بر پزشک و تقدیر از نگرانی دور کردند چاره‌ای نداشتند روز بعد رگبار تابستانی بزرگی گرفت و سائقه به درخت کاج بزرگ جلوی دهداری زد وقتی باران بند آمد دکتر کاجیتا از بیمارستان برای معالجه یاسوکا آمد قرار شد بعد از این هر سه روز یک بار برای معالجه بیاید اتاق بیمار به انتخاب دکتر کاجیتا در جای انتخاب شد که باد به خوبی از آن عبور می کرد. هاراستوری از او به شیگه کووا شد که یاد های وضعیت بیماری را پنهان از چشم یاسوکو می نوشت. غذای بیمار همانطور که دکتر کاجیتا سفارش کرد مانند غذای شیگه ماتسو در نظر گرفته شد که بیماری اتمی خفیفی داشت. غذای قابل تحمل بود. دکتر کاجیتا اینگونه سفارش کرد که یاسوکو وقتی میخواهد خواهد بخوابد، اشکال ندارد. وقتی میخواهد قدم بزند، قدم بزند اشکال ندارد. اما در مورد سه وعده غذایی هیچ گونه قفلتی نباید صورت گیرد. شیکاکو در اتاق مجزا شده نقاشی طبیعت اثر تانامورا چیکودن را ویزان کرد. این نقاشی توماری شیء با ارزشی بود که درست پنجاه ماه بعد از پایان جنگ و در اولین روزی که رعد صدا کرد، بافندی از شهرک شین ایچی که انگار در راه مانده بود، آن را با سه پیمانه برنج و پنج دلمه گیاه و و شیه ماتسومو کرد. اینکه اصل بود یا بدل فهمیده نمیشد. شیگ ماتسو اندیشید نباید بیمار را ناراحت کند. بنابراین این تا میتوانست به اتاق بیمار سر نمیزد. اکنون وضعیت بیماری کلاق اول و کلاق دوم برعکس شده بود. شاید رو برگرداندن و دیدن کلاق اول برای کلاق دوم ناخوشایند باشد. شیگکو گفت که بیمار شیگ ماتسو را بدیام نمیداند. یاسوکو نمیخواست به خانه پدریش برگردد. روز دومی که یاسوکو مرخص شد، شیگه برای گذاشتن گل میخک زود شکفته شده ای در گلدان به اتاق او رفت. از ضعیف شدن شدید یاسوکو بسیار تعجب کرد. وقتی به او خیره شد، بیمار چشمانش را بست. فقط در عرض دو تا سه روز وضعیت خونش بسیار بد شد. چهره شفاف و رنگ پریدهاش به خوبی از کم خونی او حکایت کرد شیگهکو درباره وضعیت بیماری یاسوکو جزئی و دقیق صحبت می کرد. قبل از خواب هم یادداشت های وضعیت بیماری را نشان میداد. این یادداشت ها شبیه نوشته های روزانه ی تخت بیمار توسط پرستاران بیمارستان نبود. فقط نوشتههایی معمولی بود که در آن توصیف ها و گنجانده میشد اما همین هم چیزی نبود که بتوان از آن چشم پوشی کرد. شیگه ماتسو که ذهنش شدیدن درگیر بیماری یاسوکو شده بود، برای پرسجو از رئیس درمانگاه حسوگاوا درباره اقدامات بعدی با همراه داشتن یادداشت‌های داشت وضعیت بیماری به روست های یودا رفت. این دکتر قبلاً بواسیر شیگه را عمل کرده بود. دکتر هوسوگاوا به یکی دو صفحه آن نگاه کرد و گفت چطور از اینها را به ABCC در هیروشیما بفرستم؟ پزشک بیمارستان، بیمار تحت معالجه او و پرستار یک همکاری سه نفره را شکل می‌دهند. در اینجا هم یک همکاری انسانی با محور قرار گرفتن بیماری اتمی وجود دارد که به دلیل سردرگمی باعث خستگی شده است. همکاری درباره یک بمباران شده اتمی. ای این را خوب می‌فهمم. ای در هیروشیما مکانیست که مدارک مربوط به تحقیقات مصیبت زدگان بمب اتمی را نگه می‌دارد. و گهگاه واقعیات بیماران بومبه اتمی را منتشر می کنند. از وجود جایی به نام ABCC بی اطلاع بود. با توجه به حرفهای دکتر اوساگاوا پاییز سالی که جنگ تمام شد گروهی تحقیقاتی از اشغالگران آمریکا همراه پزشکان دانشگاه توکیو به آوار سوخته هیروشیما آمدند. آنها وظیفه ای را که به عهده داشتند توسعه دادند تا انجامنی تحقیقاتی شکل گرد. این انجمن تحقیقاتی را بلایای بمب اتمی وابسته به سازمان انرژی اتمی آمریکا یا به اختصار ABCC می گفتند. سازمانی که با موضوع قرار دادن مسیب زدگان بمب اتمی به دنبال آرمانهای بزرگ تحقیقاتی بود. اما به نظر می رسد ABCC به تحقیق درباره فرایند بیماری بیماران اتمی می و سازمانی برای درمان بیماران نیست. پیش از آن آرمان های بزرگ بیماری یاسوکو مورد توجه شیگ ماسو بود پس سخن را عوض کرد و سخن نیمهکاری قبلی را دوباره مطرح کرد. دکتر برحال میدانم سرتان خیلی شلوغ است اما لطف می کنید در زمانهای فراغتی که پیش می آید این یادداشت را بخوانید اگر این یادداشت را بخوانید فکر کنم بتوانید احساسات مرا بفهمید همونطور که در این یادداشت آمده است افراد خانواده من گرفتار بیماری بمب اتم هستند من بیماری بمب اتم را دکتر چهرهی رنجیده به خود گرفت. من پزشک بواسیر هستم. همانطور که خود شما میدانید پزشک بواسیر مقعد، بواسیر بینی، بواسیر لحمی رحم، بواسیر لحمی اوزون و بواسیرهای مختلف دیگر هستم. بیماری اتمی مانند افرید بیماری معمولی نیست. خود من در بیماری اتمی دامادمان چون هیچ راهی نبود سخت گرفتار شدم و هیچ کاری هم نتوانستم بکنم. اما اگر مسئله این یاد داشت هاست همین امشب ها را میخوانم. اینها را بگذارید. به راحتی پذیرفتند، شگمات با گفتن اینکه به زودی برای پرسیدن خواهد آمد برگشت. یادداشت های روزانه ای که به دکتر حسگاوا داده شد، یادداشت‌های های هفت روزی بود که دکتر کاجیتا یاسوکو را محالجه می کرد شیگه آنها را در هم و بر هم نوشته بود پس شیگه ماتسو آن را بر کاغذی رسمی پاک نویز کرد جملات و آوانگاری ها را گونه که خود می‌خواست خواست تصحیح کرد یادداشت‌های های وضعیت بیماری یاسوکو تا کامارو ویست و ماه جولای رکبار همراه است. جشن تنجین ساعت دهانیم صبح دردی شدید آرز شد. دردی که ظاهرا یا را بسیار آزار میداد. ده دقیقه بعد در تسکین پیدا کرد. سی و هشت درجه تب. ریزش بسیار همه موی سر. حدود ساعت دو بعد از ظهر بارش بسیار شدید باران. جهش دو تا سه سائقه بزرگ. حدود ساعت سه و نیم بعد از ظهر باران بند آمد. دکتر کاجیتا برای معالجه تشریف آوردند. تب سی39 درجه. ورم کفل ها از بین رفتهند اما در جایی دیگر ورم کمی ظاهر شده. یاسوکو خجالت می کشد. پس نگاه نمیکنم. معالج ورم تمام می شود. لگن و آب جوش را لبه پنجره میگذارم و داخل اتاق میشون. دکتر برمیخیزند. یاسوکو چهرهاش را با حال پوشانده است. دکتر با گفتن از ساقه مدتی قبل تعجب کردم میخندد. دوباره نبز یا میگیرد. را می گیرد. با خود زمزمه میکند. آمپول آنپول پنیسیلین هزار و با دستی ماهر آمپول میزند. وقتی دکتر را تا دمه در بدرقه کردم گفت بیمار نسبت به دیروز تکیده تر است. شاید به خاطر تب باشد. جوشنده ماهی کوهستان، تخم مرغ، جلبک دریایی، کلاه گرزی و پهن، سیر چینی یک پیاله برنج و گوجه قرار بر این بود که هر سه روز دکتر برای معالجه بیایند بعد از مشورت با شوهرم و یاسوکو قرار بر این شد بروم از دکتر کاجیتا تقاضا کنم هر روز سر بزنند بیمار در ساعت 8 بعد از ظهر خوابید می 6 ماه جولای هوا صاف باد خانک سوب 38 درجه تب احساس سرما صبحانه میسو شیرو جلبک دریایی خشک، سیر چینی ترشی تخم مرغ، نصف پیاله برنج ظهر، سی و شش درجه دمای بدن لرز اشتها ندارد به جای غذا گوجه و کاهوی نرم شده ساعت سه بعد از ظهر دکتر کاجیتا برای درمان تشریف آوردند گفتند برای اطمینان آزمایش مطفوع انجام می دهیم. ناراضی را راضی کردند. ورم دوم هم فروکش کرده اما ورم سومی ظاهر شده بود. معالجه انجام شد. زماد و داروی پودر دادند. شام، سوپ، چیکووا، تکه های شیماجی، خیار نرم شده، دو پیاله برنج. کتاب یادداشت والی بزرگ اثر یاداسعون را خواند. حدود نه و شب خوابید. بیست ماه جولای گهگاه رگبار اصر تابستان ادامه ی کتاب یاد والی بزرگ را میخواند ظهر دمای بدن سی و درجه. ترشی خیار، خورش ریشه گیاه بابا آدم، جوشانده ماهی کوهستان، تخم مرغ جوشیده، یک پیاله بره. از دوستش در فروی چی نامه ای رسید یا بعد از تمام کردن جوابی طولانی خودش نامه را در صندوق پست انداخت تا ساعت 3 بعد از ظهر که دکتر کاجیتا آمدند خواب نیم روز دمای بدن معمولی مسئله غیرعادی وجود ندارد بعد از تمام کردن درمان ورم دکتر هنگام برگشتن گفت امروز صبح از زادگاه هم ایوامی تلفن کردند به من اطلاع دادند پدرم فلج و زمینگیر شده است. بنابراین فردا و زود به آنجا می روم. کارهای مرا رو دکتر موریتانی به عهده گرفتند. به هر حال نگران نباشید. چهرهش گرفته بود. از مدتها قبل این شایعه وجود داشت که دکتر موریتانی با دکتر کاجیتا بد برخورد می کند. دکتر آیا برای همیشه به ایوامی بر نمی گردید؟ نه اینجوری نیست. فلج پدرم خفیف است و فکر کنم بتواند زندگی کند. بسیار خوب مواظب به بیمارتان باشید. دکتر جای خالیتان را احساس می کنیم." درست بعد از اینکه شوهرم از استخر پرورش ماهی برگشت شوهرم و من دکتر را تا ابتدای سراشیبی بدخه کردیم. دکتر سوار بر موتور با مهارت پایین رفت. شب دمای بدن سی درجه. شوربای ساقی سیر چینی که از خاک بیرون آورده شده بود، کاهوی خرد شده، جوشانده ماهی کوهستان، کوکو، دو پیاله برنج، گوجه. شب خیلی گرم بود. همراه یاسوکوب همه برای خنک شدن به جایگاه هواخوری در پای درخت کنپوناشی رفتیم و خنک شدیم. در حال خوردن سایای نمکسود درباره مسائل مختلف حرف زدیم. تاکیزو پدر بزرگ 89 ساله آقای آتسویاشی با این بهانه که پس فردا روز گاو در چله تابستان است با سه قطعه مارماهی برای عیادت یاسوکو آمد. در جایگاه هواخوری کنار درخت از هر دری سخن گفتیم. پدر بزرگرگ برای رعایت حال بیمار بدون وسط کشیدن بحث بیماری به نقل افسانه های از قدیم پرداخت که نصف آن دروغ به نظر می رسید. حرفهای خندهدار میزد یاسوکو سكو بسیار خندید خود پدر پدربزرگ اصلا نمیخندید همین هم او را چند برابر دار میکرد وقتی من پدر پدربزرگ جوان بودم یعنی در قدیم قدیم برای هواخوری زیر این درخت جایگاهی درست کرده بودیم و تنگ غروب همینجا به هواخوری میپرداختیم گورکنی در جستجوی خوردن آدم به اینجا میآمد و از زیر جایگاه هواخوری سرک میکشید این مربوط به خیلی سالها پیش است وقتی من پدر بزرگ جوان بودم یعنی در قدیم قدیم در آبادی آگاتا از روستای کباتا که پسری وظیفه شناس به اسم یو ایچی زندگی می کرد. تمام مسافران آن حوالی او را می و حتی افعی آدم خار هم از او حساب می برد افعی افرادی را که به سفر می زیاد می خورد. مسافران وقتی افعی را می میگفتند، ما یو ایچی از اوگاتا در روستای کباتاکه هستیم سه بار که این را بلند میگفتند گفتند افعی گردنش را پایین می آورد و فرار می کرد واقعا عجیب بود واقعا عجیب بود وقتی من پدر بزرگ جوان بودم یعنی در قدیم قدیم سیادی گوزنی شکار کرد در راه برگشت گرگ کوهستان او را تعقیب می کرد وقتی سیاد به عقب برمیگشت، گرگ با فشار دادن دندانهایش به هم سراسدا می کرد. سیاد نمکی را که در کیسهی مخفی همراه خود داشت آنجا پاشید و بدون هیچ مشکلی به خانه برگشت. این مربوط به خیلی سالها پیش است. بیستا ماه جولای هوایی عالی حدود عصر کمی رگبار تابستانی خیلی زود دوباره هوایی عالی شوهرم بعد از بیدار شدن برای پرداخت هزینه داروها و هدیه سر راه به خانه دکتر کاجیتا رفت. با توجه به حرفهای او بعد برگشت به طور قطع دیگر دکتر کاجیتا به روستای که بر نمی گشت. چهره رنگ پریده شوهرم و صدای خرخر بینیش وقت حرف زدن دقیقا نشان دهنده این مسئله بود. بیمار حالش بهتر شده و دمای بدنش سی و هفت است. سپانش؟ سوپ میساشیرو با گیاه گوشفیل، سیر چینی، تخم مرغ، ترشی و دو پیاله برنج. ورم سوم هم تمام شد و بیمار خودش زماد مالید. سه نفری درباره نحوه معالجه توسط پزشک مشورت کردیم. عقیده هر سه نفرمان متفاوت بود و یکی نشد. همسرم کتاب راهنما را بیرون آورد اما فقط آن را ورق زد. سرانجام قرار بران شد که خود بیمار انتخاب کند وقتی نهار تمام شد از آنجا که حال بیمار خوب بود و دمای بدنش هم مناسب به تنهایی دکتر رفت خواستم همراهش بروم اما شدیداً مخالفت کرد پس صرف نظر کردم شوهرم به استخر پرورش ماهی رفت از اینکه چنین با میل و رقبت می رود حسودی هم شد تکثیر کپور بار اول شکست خورد اما بار دوم با برطرف کردن نقص ها موفق بود. یک مارماهی را پاک و بدون هیچ ماده افزودنی کباب کردم قبل از آن لحاف یا سکو را آفتاب دادم. حدود ساعت چهار بعد از ظهر صاحب خاروبار فروشی با عجله آمد. همین حالا دخترتان تلفن کرد گفت پیغامی به شما برسانم. تصمیمش را گرفته و در بیمارستان کویشیکی در روستای همجوار بستری شده است. حالش خوب است و هیچ مشکلی ندارد لطفا نگران نباشید اشتباه نگرفته اید؟ نه یاسوکا شما بود اینها را مانند وقتی که در خواب آب به گوش وارد می شود شنیدم و سراسیمه شدم وقتی به خودم آمدم تلگرافی به در خانهمان رسید مبنی بر اینکه به بی هیچ وقفی کسی به بیمارستان کویشیکی برود برای اطلاع به شوهرم به استخر پرورش ماهی رفتم شوهرم از همانجا و با همان حال به بیمارستان رفت. غروب باز هم صاحب خرابار فروشی با عجله آمد. شوهرتان تلفن زد. با پدر یاسوکو هم مشورت شد. و همانطور که خود مریض گفته بود او را در بیمارستان بستری کردند. امشب شاید خیلی دیر برگردند. حالش؟ این را نپرسیدم. ولی حتما حالش خوب بود. احساسی که صبح داشتم حالا به شکل مبهمی به نگرانی بدل شده بود. 29 همه ماه جولای هوا صاف. شوهرم دیشب دیر وقت برگشت. معالجات بیمارستان کویشیکی با معالجات دکتر کاجیتا متفاوت بود. گفتن تبش به دلیل التهاب ورم بدنش است. ورم هم به دلیل یک نوع باکتری نیست بلکه به دلیل سرایت مخلوطی از باکتری هاست. پزشک بیمارستان کویشیکی تشخیص داد که اینها عوارض جانبی بیماری خفیف اتمی است. و آن پول توبرکولین به او تزریخ کرد صبح در راه رفتن به بیمارستان برای تشکر به خاروبار فروشی سر زدم صاحب آنجا گفت دیروز بعد از ظهر یا سوکا را دیده است که از درمانگاه کورات خارج می شود خانم صاحب مغازه یاشیمورا هم که همان وقت آمده بود گفت: « با این حساب من هم او را دیدم، فکر کنم چتر آفتابی زردی داشت وقتی وارد بیمارستان اومورا شد او را دیدم اگر چتر آفتابی زردی داشت، نمی توانست دختر دیگری به غیر از یاسوکا باشد. خانم صاحب مغازه یاشیمورا گفت، حدود ساعت دونیم بعد از ظهر چتر آفتابی زرد را دیده و صاحب خرابار فروشی هم او را حدود ساعت یک دیده بود. به نظر میرسید او اول در درمانگاه کوراتا، بعد بیمارستان اومورا و آخر سر در بیمارستان کایشیکی معالجه شده بود. جمله حکیمانه بیماری، بیمار را سرگردان می کند؟ اشتباه نیست تنگی اتاقهای بیمارستان رنجاور بود اما چون از چوب و سیمان ساخته شده و به سبک غربی بودند داخل اتاقها روشن و جریان هوا خوب بود نیمی از تخت را پرده پوشانده بود یاسوکا که روی تخت به پهلو خوابیده بود با دیدن من احساساتی شد با گفتن ببخشید خود سرانه اقدام کردم صورتش را در بالش فرو برد بدون صحبت از این موضوع، با گفتگو از کباب مارماهی که همراه داشتم، به حرف زدن درباره پرورش ماهی کپور پرداختیم که اطلاعاتم درباره آن خیلی کم بود. یاسوکو به هیچ وجه سر حال نبود، حتی حوصله آه کشیدن هم نداشت. ساعت 10:00 صبح، سرزدن دکتر رئیس بیمارستان برای معالجه. به سبب توبرکولین دمای بدن 38 درجه بود. تا تمام شدن معالجه ورم بیرون آمدم برای مدتی به کپورهای چشم نگاه کردم و برگشتم در راه رو با رئیس بیمارستان برخورد کردم و ایستاده حرف زدیم دکتر. حدود نیمه شب وقتی پرستار با اتاقها سرکشی میکرد را دیده بود که زانوهایش را بر الوار کف اتاق گذاشته به تخت تکیه داده و گریه میکرد حالش را که پرسید ناله کرد که جای ورم خارش دارد و عذیت می کند. وقتی دامن لباس خوابش را بالا زد و پرستار چرا قوه را نزدیک کرد، کرم‌های سنجاقی روی ورم در حال وول خوردن بودند. این کرم‌های سنجاقی کرم‌های بسیار ریزی هستند که داخل بدن زندگی انگلی دارند. شب که می شود از مقعد بیرون می آیند و تخم ریزی می کنند. معمولاً تخم ریزیشان در است که گوشت فاسد شده و ورم کرده است. به هر حال علاوه بر آنکه لازم است، یک قسمت از آن از زیر میکروسکوپ بررسی شود می با یک عمل جراحی آن قسمت ها را به طور کامل جدا کنم. کمی قبل که نگاه کردم، یکی از این ورم درست نزدیک مقعد رشد کرده بود. اگر قسمت های فاسد شده برداشته شود، بعد از آن چه خواهد شد؟ به مرور زمان گوشت ها راشت خواهند کرد شاید جای زخم باقی بماند درست است احتمالش خیلی کم است و ما این کار را انجام خواهیم داد دکتر حدود پنجاه سال داشت به نظر می یا سوکو خسته است زنگ نهار که زده شد برگشتم میز غذایی که در راه را دیدم عبارت بود از تکه های ماهی شیما آجی قرمز همراه با کنجد تخم مور ترشی. روز سیوم ماه جولای هوای صاف از ظهر شوهرم آزم بیمارستان کویشیکی شد با توجه به حرفهای او بعد از برگشتن درجه حرارت بدن یاسوکو سی و هفت بود دیشب درد شدیدی داشت امروز ساعت دوازده یک عدد قرص دیازین خورد باید هر چهار ساعت یک عدد قرص میخورد چهار حلویی را که شوهرم برای عیادت برده بود بعد از بریدن نمی توانست با دندانهای جلو بجود پس با دندانهای کناری آن را جویده بود علتش را که پرسیده بود گفته بود دو تا از دندانهای جلوش لق شدهاند. وقتی با نوک زبان به آنها فشار می آورد تکان می خوردند. وقتی شوهرم به دکتر گفت به نظر می اشتها نداشته باشد دکتر به او جواب داده بود در حال حاضر خیلی مهمتر از اشتها ریشهکن کردن ورم هاست. کاری کنید قرص های دیازین را درست سر وقت بخورد. ظاهرا ورمهایی یکی بعد از دیگری به وجود میآیند و از بین می روند، به وجود میآیند و از بین می روند. اما نمیدانیم عاقبت چه خواهد شد. وقتی گفتم: با این اصاف وضعیت چندان خوب نیست. شوهرم گفت درست است همه بدنش صدمه دیده است دندانش لق است کفارش درد میکند تب دارد و در هر روز یک بار درد شدیدی را تحمل می کند. امروز بعد از ظهر بادی به پا خاست. زنی که آسیا به بادی داشت در حال عبور بود به دلیل تند باد به داخل خانه آمد وقتی صحبت بیماری اتمی شد از دکتر حساگاوا در روستای یودا سخن به میان آورد داماد دکتر که خودش هم دکتر بود در بیمارستان نیروی زمینی ارتش در هیروشیما بمباران شد برگونه و لاله گوشش که سوخته بود کرمهایی پیدا شدند و لاله گوش راستش را خوردند دستش به دلیل سوختگی صدمه دید انگشتانش به هم چسبید و مانند کف دست شد تنش پوست و استخان شد با اینکه سه تا چهار تشک روی هم می انداختند و می باز هم سفتی تاتامی کف استخانش را درد می آد. یک بار نفسش گرفت و درست مثل یک مرده شد. با این همه دکتر حساگاوه از او پرستاری کرد و حالش خوب شد. به محض اینکه این زن رفت، پدر یاسوکا برای ملاقات آمد. گفت میخواهد سهم خود را از هزینه های درمان آن بچه بپردازد. شوهرم چهره ناراضی به خود گرفت. هیچ نمی گفت و فقط به پایین نگاه می کرد. لغت درستش این است که بگویم لب فرو بسته بود.